جلسه سیوم در بسم الله الرحمن الرحیم رب العالمین والصلاة والسلام على محمد و به اصول این قائل به به مجید زواهر مطلقا چه از قسم زواهر قدلی و چه از قسم زواهر استظهاری و چه از قسم زواهر استنباکی ولی اخباری این قائل به عدم مجید هم در قسم دوم و و این نظریه اختلاف جوهری بین اخباری و اصولی در یک مسئله است اون مسئله اجتهاده که برید به بحانی هم تسریح یعنی اونها قائل به عدم جواز اجتهاد ولی اصول این به جواز اجتهاد هم. و مراد از اجتهاد اجتهاد در تشخیص و تحقیق موضوعات خالقی نه در تحصیل احکام شرعی و ایلا اونها خودشون از منابع خودشون قواعد فقیه رو استنباد می کنند برز از اختلاف اینها در اجتهاد در تشخیص و تحقیق موضوعات خارجی است که اصولی این به تغییبه به موضوعات و افتاین با بایده به از این موضوعی شد لذان ها موضوعات اثباتی و اینن موضوعات سبوتی می بونن. ولی اصولی این بایدن به این که داره موضوعی که در مقام اثبات یعنی در مقام لسان علم احس شده خیلی از اون موضوعی باشه که واقعا مرد به نظر مولا در این ثوایات از برگشت اشتراف به اجتماعات و سمرات که برش مطلب میشه بنابراین بوحه و سوریه. موضوع تقسیم میشه به چهار دست یا موضوع بسیطه که بسیط تقسیم میشه به بسیط ذاتی و عرضیه و یا موضوع مقیده یا موضوع مرکبه اینها در جزوی صفحه صفحه برد نوشیم و تو صفحه 103 یک تعبیلی از ترکیب نوشتیم که خیلی مهمه و ایند ترکیب بارتون هم جعل شعین شعین واحدن و رو ترکیب یعنی دو چیز متباین رو یه چیز قرار ده. این متباین یک چیز بشه ولا اعتباره اینو گرن ترکیب ولا یخفا انگل نبولا را بتا بینها از اختران و زمانی یعنی در تمام موارد ترکیب انها چیزی که رابط و علقه بین این دو چیزه رابط زمانی نه زمان و از اینها بگیریم اینکه علقه به هم اگر روکوع امام رو با روکوع معمون بخواهیم بگیم اینها ارتباطی دارند، دارن در خصوص زمان یک ثانیه باشه یک ساعت باشه اگر زمان را از اینها بگیریم دیگه که ارتباطی به هم دیگه نداره روکوع ما میشه ارتباطی به روکوع معمون نداره متباینه و اینها از اهمیت با دسکت بخونه ولای افقا هم نهولا را به اینها یعنی بین المتباینه هاست ایلا اختلاف زمانی فجاءا یعنی یکون محقق الوحدت بین المتفاوت. یعنی تنها اولگی که موضوعات مراقبه دو جزش با همیداره، اولگی زمانیه. و قدشته را فی الزنتهم را این هم آیه از آیات مشهور. و خیلی از موانیشون به این برمید قایز آه اهمیت این هاتم و قایزات خوب حضمشه لا رابطه بین المتوایهان تقییر رابطه غیر از زمان و بهتر از زمان داره ما اینجا اومده گفتیم تنهای اعتباطشون در زمان ولی در تقییر اعتباطیگی داره اون هر از اینجا هست تنها اردهی که مرکبات دارن زمان ولی مقایدات نه ارده های دیگه هم دارن و قدشته هره بی از سنته هم و بی کلماته که که را رابطه بگن متبایینات این لذن بنابراین در مرکبات تنها اردهی که بین دو جز هست فقط زمان رکو امام با رو مشکلش که نه در یک زمان هستن یا نیستن اگه ما این زمان رو تونستیم در بیاریم موضوع اطلاف پیدا میکنه حکم مطلقه میشه اگه ما این وقتت زمان رو بهش نرسیدیم، نتونستیم اثبات کنیم نمیشه پس اینا خیلی که مطالب فنی نیاز هضم داریم <تصفح> تقریبه ما بنا نیست کوچه بازاری حرف بزنیم بخواست اصطلاحی حرف بزنیم در اصطلاح اصولی ترکیب یعنی همین یعنی شما دیوار رو با ماست میخوایی مرکبش کنیم هیچ ارتباطی بندگی نداره الا در زمان شما در موضوعات مرکبه دنبال احراز وحدت زمانی شما میخوای بگید این رکوع در این زمان رکوع امام بوده. این خیلی مهمه اگه حض نشه در خیلی از کتاب ها تصریبش نمیشه ناپخته میمونه ما چی میدونیم ما رکل هر چی هر نداره ببین اگه بخواد بگین نماز صحیحه اقتداء من درسته باید رکوع من در اون زمان رکوع ما بهش متصل شده باشه پس ملاز زمان من زمان میگم درمیاد وضو فرض عنوان انتظایی میشه دیگه عنوان انتظایی میشه بعضی از موارد همین عنوان انتظایی قرکه. یه مرجع نمیشه. آقا قران گفته بود رکوع امام، بعد رکوع این شد معزه. اصطلاحاً این میگن قرکه دیگه, دیگه, دیگه. دیگه, دیگه چیزی که سر از یک چیز در میاره بهش میگن قرکه. ترکیب همینه دیگه. ترکیب اصطلاحاً همینه. دارا به تباین متباینات ذات زمان. ما دو چیز متباین، رکوع شما با رکوع من. اینها در یک زمان به هم برسه نماز من درست برده همه این درست ما میخواهیم این آیه مشهور هست که یا نشد ترکیب در ترکیب ما میخوام دو چیزه متواین رو به هم متصل کنیم چسبه چی این زمان بابا جما الان اگر کشم خایل بکنید که این به انتدایی خصوشه ما باید خایل بکنید برد بکنید که اینجام نمیتونیم اینجام نمیتونیم به خواب داری این ادامه صفحات هستیه سفته صفحه سفته 119 بالا نمیشته به سر بشه یه نواشه او تبارون میبینیم او تأخور میهم و سم مشکتی ببایه ها جرال استثاب این این عنوان ولی جرال استثاب چرا؟ لأن الموضوع نئذن ليس هو العنوان الانتظائی بل هو العنوان ذاتی و يكون من قسم الموضوع بسید ذاتی لن انتظائی فتعمل تیره حتی لا تشتبه علی جنمور کمشتبه على امم من قبلد و ترکیب یا نه شبههی نمیمونه با دقت میگم آقایی بخونن، با دقت بخونید شبهه نمیمونه فلترهید یا تحقق فلترهید انوانین المتباهینه یعنی ماست و دروازه چه ارتباطی من دیگه نداره چطور بخونم مرتبط؟, مرتبط بکنن با زمان بنابراین در موضوعات و دنبال اون قلقه زمانی هستی مثال واضحش نماز زمان واضحترین مثالش فه اینهو اجنبیون کلون من هما ان این آخر کما موضوع زمان فه اینهو معلفون من جزئین احد هما علیت و الاستیدار و الاخر و عدم و رضا که این با دو عمر در یک زمان ما در زمان استیدار میخوانم بگیم رضایت نبوده رضایت قبل به درست نمیخوره رضایت بعد هم به درست نمیخوره در زمان استیدار رضایت بود یا نبود قالوا فصاروا على الحديث بان كل يد استولى على مال الغير عايزين थोड़ी کنیم که هر یادی که مستولی بر مال غیر باشه فیا نتون. چرا من حيث ان النفس الاستيلاء على مال الغير ظاهر في العدوان تكون اليد ضامنتن بمجرد الاستدام من باب الموضوع المغایظ اگر اینطوری تفسیر بکنیم میشه تقریر تقریر گفتیم سر از زمان کیفری در میاره ولی ترکیب سر از زمان حقوقی در میاره بنابراین دوتا تا تفصیحه. و بین قاعده زمانیت با قاعده یت فرقه قاعده یت که اماره بر ملکیت هر شی دست هر کسی باشه ظاهرا اندل و قاعده زمانیت یعنی علالیت محاخذت از تا طاعتی هر کسی مستوری مال دیگری باشه زامن تنجی برگرد و فرق از بین قاعده زمانیت با قاعده یه تمام البحث منصب کن علا تشخیص ماهیت الارض القائمه بالموضوع الید الید الارض زامنتون حالا این عرض ارزون مفارق او ارزون لازمون زادی عقص یعنی گرفتن یا گرفتن ازوانی قاپیدن کدومشه علالیت ما اخذت. یعنی قاپیدن از دست دیگری که آقای خویی تفسیر کرده الاخص بالقهر و القلبه که عدوان در دلشه یا یعنی نه عقص یعنی مجرد حصول مال دیگری در دستش، ولو با قهر و قلبه و قاپیدن هم نمشه. می‌مونه ارتقاضات ذهنی شما چطور تفسیر میکنه. شما می‌گید عللیت مؤخره یعنی با قهر و غلبه یا مجرد حصول مال دیگری در دست شما فهد المراد بالعقل هو العدوان کما علیه سید بن خویی او مجرد اثبات علت کما علیه مشهور ما اینا رو نمی‌نویسین برای اینکه خودتون پیدا بونید قائله‌ش فی خلافکن و ما حب معتقدد اوقلایی فی هم المقام معام ان نه معومون ث کند موضوع مقعیت او مرک. و به عبارت این قراه اینکه م اوقلایی موضوع مرک میدونه یا مقعیت صفحش آدرسداد که مضول های صابق و کیفکان حالا هر کدومش باشه. بحثی که با اخباریگین داریم آیا کبرویه یا سبرویه یا هر دو محفظ خراسانه میگه سبرویه اونها میگن عقل مدرک احکام نیست. محقق عراقی میگه کبرویه یعنی اخباریین قائلا به عدم حدیت ادراکات عقلیه مصنف انصاری قائده میگه هر دو هم صغروی هم کبروی و ما زکره المصنف و از هر یعنی نزا هم صغروی هم کبروی چرا فا اینال امین یمنا و صغرا و سید و صدر سید اسماعید صدر اخباری یمنا و الكبرا. حالا قایی هم شاره میتونه از قطع حاصل از مقدمات عقلیه ما رو من کنه یا نمیتونه اینم یه مسئله یه در واقعه قطعیت قردن سالین ها مطرح زهب المسنف الالعدم شیخ هم نمیشه به خاطر قطعیت ذاتیه و ذاتی لا یتخل کسی نمیتونه نمیش کنه و زهب الناینی الال امکان در تمام مواردی که مشهور قائل به استحاله میشن نائینی قائل به امکان میتونه بشه به خاطر اینشون یک دستگاهی اختراک کرده با اون دستگاه میشه اشیاء محال رو ممکنش کرد اون چیزی که ناینی اختراک کرده معروف به متمم موجهده نظریه متمم یعنی در هر قافیهی هر اهدی از خوبه ها فیل بکنه ناینگی نمی کنه مطمم ملجن زهبن ناینی دل امکان ویزو نظریت مطمم ملجن المبارک که خیلی به دردش کرده همه دید. بعد صفحات بعد یه مسئلهی مستهه و اونی که مسندقم در کتاب آورده که شاید مراد اخویی نیمه خوز در مطالب اعلی حرام باشه بخاطر اینکه ذهن از دست فقها میگیره دیگه ما اگه بخوام از اربعه بخونیم شواهد ربوبیه بخونیم نمیدونم از تهذیب بهمنیار رو بخونیم خصوص رو بخونیم نصوص الکلم رو بخونیم اسفال العنس رو بخونیم تمهید ابن ترکه رو و امسالین ها رو بخونیم دیگه ذهن عرفی نداریم شاید خوز در این مطالب حرامه حالا یا حرام شرع یا حرام عقلیه فقط زگرش شیخ که به جمله حرمت داره خوز در مطالب عقلیه حرام. به خاطر ذهن و فیر از انسان میگیره بعد یه مثالهایی زدیم بعد در سخیه بعد از یه مطلبی از بهره بحرال فواهد آشتیانی آوردیم اینها را آقاین با تعمل بخونید خیلی اهمیتی نداره مسئله ای که روزهای گذشته مطرح شد صفحه هفتم بله, بله ما میخوایم توضیح کنیم این مخالف ما نشد و الا فرقه وهابیت از کجا درست شد به خاطر افراد و تفکیل دیگه افراد و تفکیل همیشه سر از یه نهانجاری در میگه ما هم میخوایم توضیحش کنیم الان برگردوندیم اونها گفتیم اونا میگن حسی و قریب به حس و نمیدونم بعید از حس اینها رو برگردوندیم به که خیلی مخالفت احساس نشه مسئله اینه که اونها قائل به عدم جواز اجتهاد در موضوع اونا میگن موضوع ظاهری همون موضوع باطنیه، کسی هر تصرف در موضوعات رو نداره یکی از اون موضوعات اینه که خومس موردش و موضوعش و محلش غنیمته. انماغننتوم و ان لله خومصاحوب. ظاهر آیه میگه غنیمت در ذاتی غنیمت نمیشه صرف کرد مگر یک دوایت قطعی باشه. لذا در رابطه با موضوع خمس اختلافه حالا داخل پرانتز من یه مفتر میبگم خمس عرباه مکاسم خمس قرآنی نیست یعنی یک اصل قرآنی نداره اصل سنتی داره لذا میشه در مقدارش، مصرفش و ثباتش و تغییرش مناقشه کرد و اون خمسی که در غنیمت ثابته بر اربای مکاسب انسان قائل نباشه این نیاز به تحقیق یک ساله داشت این داخل فرامضیه است که ما خمس در اربای مکاسب رو قیاس نکنیم به خمس آیه و بیان بگیم خمس در آیه قرآن نیمده بنابراین خمس بر اربای مکاسب ثابت نیست چرا ثابته منتج ظاهر خودش لذا یک فرغای با خمس غنیمت داره حالا بحث در این بود که موضوع خمس چیه اخباری میگن موضوع خمس دن اصولی میگه نه موضوع خمس موارد عدیده یکی از اون موارد عرباه مکاسبه و خود عرباه مکاسب اختلافیه که چه, چه ماهیتیه حلا نموضوع الخمس خصوص و فوائد مکتسبه بناس این اقوال حفظ کنن ها. یعنی یکی از چیزهایی که برای طلبه ای که در راه فقاحت میخواد پیشتفل کنه مهمه حفظیاتشه تا شما مبانی تو ذهنتون نباشه شما پیشرفت نمیکنید. اولین نکته اینه که شما محفوظاتون خیلی باید زیاد باشه به زحمت بیافتید اینها رو حفظ کنید آیا موضوع خصوص فواهد مکتب است؟ یا مطلب فائده ولو بدون اکتساب یا مطلق فائده ولو بدون اختیار سه قول در اوروه براش مطرحه که اخباری به اینها قائل نیست میگه اینها تغییر احکام شرع اینها اجتهاد در مقابل نسته ولی اصولی این قاعده پس اختلاف اختلاف جوهری در مسیر اجتهاد به اون خاطر اونها میان توجیه میکنن روایات رو و با روایات زعیف هم میخوان احکام اثبات کنن مثل مستدرگل بسایی که معلمش محدث نوری قائل شده به که ما چه نیازی به اصول داریم با بودن این روایات ما رو از همین های استحصال میکنیم و یک خب رو قائل نیستن مجبورم بیان از راه اصولی مبانی رو مطرح کنن بسه ربت کلمات هم اون چیزی که اون دست در اروه خیلی منطقه آورده اینه که لیکن نسته یه دریازی جزم و به وجود اول که تکسبات باشه فتحایی به وجود داد وحتا توجوب انخستانی در قسم دوم مطلق فائده من غیر اکتصابه مثل هبه و عطیه به در اینها احتیاط واجب اینه که خمسشو بدن بعدا استربابن فصالح یعنی مطلق فایده ولو بدون اختیار مثل است بنابراین این در مذهب خمسش استحبابیه وجود نداره و یونگ استقصاء الاقوال المذکور فی کتب الاصفی اربعه 4 تا قول میشه براش استقصا کرد اولین قول قول آقا جمال در حاشیه روزه بعد آقاز احمد پیشتن اینا رو جمع آوری این صفحه ها تهمون چیزه دیگه نوشته من صفحاتی که نوشته صفحه هایت که هاشی, هاشی, هاشی, هاشی, هاشی, هاشی یعنی خود کتاب آقا جمعانی آره، بله صفحه من دیگه رو زفتم کتابون همه مرشی یه اون قسمت پیداش کردم این نیست صفحه 313 بالای صفحه یعنی صفحه 313 از خود هاشیه نه در هاشیه لومه اون صفحاتش فرق داره بعد اینا خوبه مطالبش رو نگاه کنم ولی اون اصل مطلبی که من نهر کرده بودم صفحه 313 از هاشیه آجمانه که مطلبی از مختلف علامه میاره و بعدن هاشیه میزنه به اون مطلب علامه چون علامه قائل شده بی کل ما یجتنا یعنی هر چیزی که به دست انسان برسه خمس داره ایشون فرموده اگه این به دست آوردنها شغل انسان باشه خمس داره اگه اتفاقی باشه خمس نداره بنابراین شهری خمس داره تقسیمی خمس نداره عیدی خمس نداره طرف نظر آقا جمال خانسار احدها از ال اقتصاب المهنی و نصر با الالخانساری بی هاشیت روزه و ها و چون در هاشیت داره واقعا سفی سی و سیزه و اولا در در کتاب الخمس شیخنساری ایراد گرفته به آقا جمال یعنی قوام شیخنساری خیلی تاثیر دارم میگیش چرا شیخنساری این شده قوامش به شرح هست بهترین مدرس شرح لومه بوده به این صورت در اومده واقع هایی که شرح لومه رو میکنن نمیتونن از کنن نمی اگه که خوب نخونید برگردید اینا خوب بخونید هوایشی خوبی داره تمام مطالب اونجا نه آقا جمال خانساری از بزرگترین فقهای های مامیه است احترین هوایشی متقن دست نخورده آلود نشده به متورمات اصول رویشون داره خیلی دیواس منطقاً وصول نمیکنه و اون دعای خانساری و, و نهون افراتون این میگه افراطه که ما بیایم بگیم این اگه اکتساب مهنی باشه سند باشه شغل باشه داره اگه اتفاقی باشه نداره نه این تو این افراطه درونه و ما وقتیش میگیم تفریطه نه افراط به خاطر اینکه اگه اینطوری بکنیم خمس کم میشه افراطی که ما بیایم چیزی که خمس نداشته بگیم خمس داره اگه اکتصاب مهنی باشه تفریحه یعنی ما خونسو بریدیم وله در حالا مستند ایشون چیه آقا جمال خانساری شاید تو قبلیش قبلیشم باشه در این زفاقات قبل که اومده احتمالا مستند محفظ خانساری اینه که انابین مهنیه اشتقاقی هست یعنی در روایت عنوان تاجه اومده عنوان سانه اومده عنوان قمات اومده پارچه فروش امثال این از اناوین اشتقاقی که تاجه شغلش تجارته سانه شغلش زنده بزاید چون در روایات این عناوین اشتقاقی اومده اگر شغلش باشه خمس داره اگر شغل نباشه خمس نداره و القائل یعنی خونساری استند و فیزال الالعناوین المهنیت الاشتقاقیه فی روایات البا و ساحل جلد نوم سفه کنسن فا این نظاهره ها زهلعناوین از طلب قصو بالمبدعه مستمه شغلش باشه نه روز دو روز یک ماه ای بودوسن و و تقلید و مهنت و صنعت اقلیگیون اومده اقلیگیات رو دخالت داده در موضوع و اخبارین رو قبول نمی کنه اقلیگیون منهاز از منظور رسولی و افه و بعضا بعضی اومدن گفتن ما نمی از اناوین اشتقاقی این حرف رو در بیاریم بگیم تاجر اومده احسانه اومده قمات اومده و امثال این ها دلالت بر شغل می کنه. زعفه و اون بعض بعدن الان در زمان ما زیاد شده یعنی مشهور و نه. ولی اون زمان بعضی ها مناغشه کردن در کلام خانساری یکیش سلطان است که مناقشه کردن این طوری نیست اکتصاب مهنی نمیتونه باشه زعفه و بعضون دلیل مزعف این چیه گفتن روایات مطلق یه دست روایات مطلق داریم که اون روایات مطلق در مقابل این روایات مقید به تاجر و صانع و قمات و امثال این هاست. لذا ما افضبان روایات میکنیم پس این تغییر اساس نداریم حالا این قول اگه روایات مطلقی باشه روایات مقیدی باشه طبق نظر اصولی مقید و مقید اینا مقدم میشن بر مطلقات خب کاری که خانساری کرده خیلی خوبه ایشون اومده گفته باید مهنت باشه صنعت باشه و این ظاهر مبنای سوری هم همینه مطلقات رو با مقیدات یا تحییدش میزنن بنابراین مقیدات مقدم میشه نه مطلقات اگر کسی شبهه رو به این مزعفین وارد بکنه اونا بلدن جواب بدن اونها میگن ما دوتا مبنا داریم در اصول که قدقفل انه هم المحق بلخانساری و اون دوتا تا رو اگه کسی جهاز میکرد این هر خونه میزن یعنی میخواد بگه تقیید مطلقات مشروط به دو شرط تقیید مطلقات مشروط به دو شرده و اینها معیار اساسی در این کتابایی که اطلاق و رو میار بحث میکنه متاسفانه اثری از ازش نیست که ما اون چیزهایی که فنیه در مقام بیان باید بگیم در مقام تقهید مطلقات دو شرط اساسی باید رعایت بشه یکی اینکه مقیدات و مطلقات مثبتین نباشن یعنی یکی به یعهت اقرقه یکی به یعهت اقرقه بطن هر دو مسبتینه اگه مثبتین باشه مقید بر مطلق مقدم نمیشه بنابراین مثبتین تعارضی نداره تا نیاز به جمعی داشته باشه و ما تعریف بزنیم مثبتین الان گفته عقلا رواتن مطلق و گفته مؤمناتن مثبتین تعارض نداره الا این مطلب دومی مثبتین تعارض نداره الا اینکه احراز وحدت مطلوب بشه مثبتین تا نداره الا اینکه احراز وحدت مطلوب بشه آن در اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنتن آیا شاره دوتا مطلوب داره یا یک مطلوب داره یعنی گفته یک رقبه ای را آزاد کن حالا مؤمن بود چه بهتر نبود کافرش آزاد نفس آزاد کردن خوبه بعد از اینها و, و نجدی تهم العقب و ما ادراك ما العقب فكر همه یعنی اونهایی که راه خیر و شر رو برشون واضحش کردیم عین آفتاب تا روشنش کردیم فلک تهم العقب چرا از این عقبات عبور نمیکنن چرا کارهای سنگین رو به عهده نمیگیرن پی فرار میکنم به درس های نموداری فلق تهمل عقبه نمودار کشیده چیزی که آسون بیاد آسون میره فلق تهمل عقبه و ما از العقبه ال اقبه چیه؟ فکر اقبه این که گردنی را آزاد کنی و بهترین گردن گردن خودت، که از قید زندگی های امروزی و منافساتش انسان خودش آزاد کنه یه مقدار برا فکرتون درستون اینا وقت بذارید به همه چیز وقت می‌ذارید برا درستون بیشتر وقت فکر رقبه رقبه خودتون بهترین رقبه برای آزاد کردن که انسان خودش درگیر نکنه با چهار تا روزی درس خوندن چیزی چیزی نمیفرماخه از صبح که پا میشه این باید ذهن برنامه‌هایی که تو ذهنشه برسه دیگه. دیگه وقت فکر کردن نداره از ساعت هفت بریم که تا دوازده بعد از زورم از چار تا هفت بحانه های علکی با اینجور می دونیم نمی تونیم خودمون علاف می ذهن باید آزاد باشه یعنی انسان یه طوری تصور بکنه که هیچ قید و بندی نداره قید و بند نداره احساس بی قید و بندی خودش خیلی خوبه انسان احساس کنه که درگیر چیزی نیست میتونه امروز درس بره میتونه نه همین خیلی خوبه ولی اگر بدون از ساعت 7 دوازه باید بره درس این دیگه ذهنش چیزی بیره تحمل نمیکنه. زود خسته میشه و خودش هم نمیدونه بعد از 20 سال میفهمه حضا کارهاتون تونه کمترش بکنه هر چی میتونید درس ها رو اتقامش کنید کمتر بشه حتی اگه بتونید دوتا درس یک درسش بگیرید برای اینکه ذهن مجال تفکر تعمل جولانی داشته باشه به اینکه درگیر بشه نه باشه هم صبح بیایم بیرون هم بعد از ظهر بیایم بیرون هم به زندگی برسیم هم به درس برسیم اینها سخت میشه یک هدف رو مشخصا برا خودتون انتخاب کنید بعد یه بره حاشیه خسته نشید حالا در این موارد که مطلقاتی داریم، مقیداتی داریم، تغیید بزنیم یا نزنیم، تغیید مطلقات مشروط به دو شرط. دو شرط اساسی. مسقطه نباشن. دوم اینه که وحدت مطلوب در اونها محرز نشه. اعتق رقبتن اعتق مؤمنه احتمال داره مولا دارای وحدت مطلوب باشه اینجا احتمال داره دارای تعدد مطلوب باشه وحدت مطلوب اینه که گفته رقبه آزاد کن و اون رقبه باید مومنه باشه اگه بود آزاد کن نبود نمیخوام. اگه در قبعه مومنه گیر آوردی آزاد کن گیر نه آوردی اصلا نمیخوان اصل فک رقبه به درد من نمیخوان فک رقبه معمنه رو میخواد انو مین وحدت مطلوب یک مطلوب داره اگه بود بیار اگه نبود نمیخوام مثل که در نماز شفت و اورد اگه سه رو با هم تونستی بخونی, بخونی بخون نتونستی وقت تنهایی به درد نمیخوره مشروعیت نداره اگه دوتا رو با هم تونستی بخونی دوتا رو با هم بخون چون این سه وقتی به اون هشت رکت نداره ولی اگه نتونستی سه رو بخونی اون یک دکعت وقت هم به نمیخوره وحدت مطلوبه. وحدت مطلوب یعنی تفلیم یعنی مقیده اگه بود با هم نبود نمیخواد. مثل موارد قسل در قصلی که در موارد انسان جراحتی بر بدنش هست یا قرهی یا دمل یا چرکی و امثال اینها یا شکستگی انسان یا باید بتونه با بدن سالم غسل بکنه یا اگه یک طرفش میلنگه باید تیمون کنه جبیره در غسل نیست وحدت مطلوبه ولی در وضوع جبیره داریم یعنی تعدد مطلوبه یه قسمتش بسته شده کسه نمیدونم جره قره دومده ببند گوش و دست بکش بنابراین وضوع تعدد مطلوبه غسل وحدت مطلوبه اگر تمام بدن مانعی نداشت غسل اگه مقداری از بدن مانه داره تیمون باید بکنه این زیاد وحدت مطلوب یعنی تقیی اگر در مقیدات و مطلقات ما احراز وحدت مطلوب کردیم یقیناً باید قیل بزنیم اگر احراز وحدت مطلوب نکردیم بگیم شاره گفته فکر ای بشه حالا اگه مومنه باشه چه بهتر؟ نبود غیر مومنه آزاد میکنیم کنیم اینه میگن تعدد مفروم بنابراین تقیید مطلقات منوته به یکی از این دو شرط یکی اینکه که نباشن دومی که احراز وحدت مفروب نشه اگر انسان احراز وحدت مفروب بکنه یقینا باید قید بزنه ولو مثبتین این باشه در موارد احراز وقتت مطلوب یقینا مطلقات رو قید میزنند ولو مصبت باشه و در مواردی هم که مثبتین باشه و ما احراز وحدت مطلوب نکنیم قید زده نمیشه بنابراین تقیید مطلقات مشروط به این دو شرطه حالا اینجا وحدت مطلوب داریم یا نداریم؟ آره بگه مصطحبه اون مقیده ما مستحب میشه در مواردی که مصطحبه و تعدد مطلوب رو ما احراز کردیم اولی میشه واجب دومی میشه مستحب. یعنی مطلق واجبه مقید مصطحبه یقینا کسی که فرقی باشه یکی رو میکنه. میکن اگه نشد اون اینکه باید برلومه بکن ما بخصیم با فوقه هاست فوقه ها میتونن احراس کنن یا تعدد مطلوب یا وحدت مطلوب ما... نه نداریم اینطور نیست که بگیم آقا ناینی نا هیچ کدامیشه تشکیز نمیده اون دیگه ناینی نا نیست ناینی نا باشه میفهم که یا وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب دیگه حالا آدلست بدم برای, برای. حالا حالا شبهر در درمه ببین اگه احراض وحدت مطلوب بشه پیدا میزنید اهراز وحدت مطلوب نشه قیت نمیزنن حالا چه اهراز تحصیل مطلوب بشه چه نشه بابا من چی میتونم چرا اختلاف, اختلاف, اختلاف دارن نه نه اختلاف دیگه همین مطلب را آقای مراجعه کنن به شرح آغازی عراقی بر طول المتعلمی بهترین کتاب فقی علامه و شرح تفسیر آغازی هم خیلی علمی و فنی از خدا بخواد خدا یه ست. سالی اون بده برید اینا بخونید اینا چین خدا میدونه من موندم در حیرتم هم هنازم. شرح تفسیره من نمیدونم الان, نمی الان ندارم شرح تفسیره رو ولی این مطلبی که من دارم میگم از آغازی عراقی آغازی عراقی در شرح تفسیر قسمت خونس قسمت هربای مکاسه که تقید مطلقات مشروط به دوشند مثبتین نباشند و اگر مثبتین باشند ما بیان کنیم احراز وحدت مطلوب کنیم خیلی فنیه خدا میدونه یعنی آقازيها خودش متوجه نیست خدا شاهده ولی اینو نایینی فهمیده برده چقدر پرورش دادیم بعدش یعنی خیلی عجیبی جی چه ذهن متفکری داره یعنی ذهنش اینجا دیگه اتفاقازی شده خیلی خوبه مثبتین باشه تغییر نمیزنه و اگر مثبتین رو ما ایراد کنیم وحدت مطلوب داره بنابراین همش برگشته به تشخیص موقعهاست اینطور نیست که بگیم آقا مثبتین قید نزن یا بزن آخرش برگردونده به ذهن قبیل اگه ذهن شما اینو تشخیص بده وحدت مسبوبو باید قید بزنید و مثبتین باشه و اگر تشخیص دادی که نه اهمیت نداره فک رقبه قران داره میگه فک رقبه روایات هم داره اعتق رقبه تن تعدد مطلوبه وقتی تعدد مطلوبه مطلوبه اگر احراز وحدت مطلوب نه اینطوری اصلا نداریم اتفاقا مقتضای اصل اولی وحدت مطلوبه بنویسید در مصبتین دیگه اون چی که معلبه است نیست در مصبتین نه در مواد ببین میگن این مقید و مطلقات اصل اولی در مقیدا وحدت مطلوب این مقیدات اومد بگه که اون اطلاق اعتق منظور نیست خب. بود کانالشست شده حالا مخت هایقایده نظر ما اینه که وقتت مطوب نظر آقا تعداد مطوب نظر شما هممردهانه. حالا این کتاب آقا زیار رو حتما مراجعه کنید. شادم این مئ دیگم در طرافش میاد حاشیه حاش آقاجم آم در 3۳ حتما مراجعه کنید بنویسید با و برش بحث کنید و من وقت پیدا نکردم اینشون حاشیه بر مطلببه. مختلف علامه زده مختلف الشیه که اون هم از بهترین کتابهای علامه است موارد اختلافی شیعه رو با ادله‌اش آورده اون هاشیه زده بر مطلب مختلف و شیعه. اون مطلب رو از مختلف الشیه پیدا کنه آقا آره دیگه بر مطلب مختلف الشیه ادامه حاشیه زده و حاشیهش مستبتن این مبنای فقهی در فقه خمسه حد وزعفه و بعضان به وجود الاطلاقات فلمقام, اینا فلمقام. آره آره این همه شو مطبط به همه وزعفه و بعضان به وجود الاطلاقات فلمقام خب بعضی گفتن ما اطلاقات نمیذاره قول خانساری به کرسی بشنیم نوایات مطلق داریم ما گفتیم که اونو میشه تقیید بزنیم یا نمیشه کلامی را از آغازی عراقی آوردیم که در مفنه اومده بود در مفنه اومده بودیم به خاطر اینکه نخواستم طولانی بشه ولی الان لازم بود بگم و من از معلوم از نهاز المطلقات دیر و منافیت للمقیدات این مطلقات منافاتی با اونها ندارد چرا؟ لکاونه ما مستطین اونها مثبتین در صورتی مناقض داره که احراز وحدت مطلوب بشه. پس اینو اینجوری بنویسیده. مثبتین در صورتی تنافی دارند که احراز وحدت مطلوب بشه. اگر احراز وحدت مطلوب بکنیم تعارض داره. میگه پس چرا مطلق آورده بود؟ اینکه نظرش وحدت مطلوب بوده، خب باید فقط مقید می‌یا چرا مطلق آورده؟ مردم اشتبا بیفتن. در موارد احراز وحدت مطلوب اطلاق برای چی آورده؟ بنابراین تعارض ما شغل میشه و این نها در موضوع یعنی موضوع که الان با خانساری و دیگران داریم بحث میکنیم بله بابا ما داریم حسبونها رو داریم میگیم ما این مناقشه هم نکردیم چیزی هم نگفتیم چیزی من نگفتیم اون یا جلل کلام اتمام پیدا کرد. اختزای قاعده اولی هم وحدت مفعول هست. که صورت تعارض خب که اون اصلا مشروع مفرد نشده ولی علل قاعده اگه مس مشهور میگن مسبدین اصلا تعارض نداره مطلقاً خودشون راحت کردن. آغازیار آغی اومده قاعده شده به اینکه مثبتین در یک صورت تعارض داره. با اونه که احراز وحدت مطلوب بشه یعنی من اهراز کنم که این رقبه باید معامله باشه اگه اینطوریه بس رقب... رقبتن رو برای چی گفته بود؟ خب تعالیزه دیگه مرومه؟ این قول اول قول دوم مطلق الاقتصاب این هم گفتن موضوع خونس مطلق اقتصابه که گفته مهنی باشه و مشهور همینو قائدن بعد از آقا جمال خان ساری مطلب اکتساب رو من دون تغییری به گونه‌ای معنتا او سند شد فإن انواند اکتساب قد ورادت به نفس حی فی بعض روایات آدرسش هم و والجامع بین تلك عناوین فی روایات و التکسب و طلب المال دنبال مال و رو به صرف نام اکتساب بهش تغ میکنه سالسه مطلق الاستفادات ای حصول فایده اختیارا اختیارا فایده برش حاصل شده مثل یه هبه رو قبولش کرد قبول هبه خودش تلاش دیگه به خاطی منت درش هست و اینا رو ثانی در شرحل ماه برده مصطفا که گفته قبول هبه اکتصاب چرا اکتصابه؟ به خاطر ی مننت داره مننت درش هستن لذا اکتساب فقط به اکتسابات شغلی عرفی نمیگن اکتساب در هر چیزی در به حسب خودشه اکتساب در هبه به قبولش اکتساب کل چیزین به حسبه ای حصول اختیارن اختیارا ولو من دون طلب و سعی کلهدیه و هبه و عطیه و این ستار خودشون پیدا کنن و ظال که کفایت مجرد بالقبول فیها من دون حاجت نلا سعی و تلاش و امثال و یگون از سین هی سین استفاده سین استفاده میشه سیرورا ای سیرورت و شخصه زا من مندونه ایه طلب اینکه ما و مختزا بابل استفعال که طلب رو میخواد فی مقابل بابل افتعال که طلب درش نیست که قوله اکتت زیدون بکرن یعنی طلب زیدون من بکرن گدایی کرد طلب کرد یا به معنای تلاشه طلب تلاش و کوشش کن اکتت در زیدون بکن فیقان استهجردین ایثار هجرم و تهبل الیه یعنی تهبل تینو الالهجر و کیفکان فا انوانو الاستفاده وردفی بعض النصوص ایزه اون هم اونم شده حالا کدومش موضوع حکم یقین باید اختلافی باشه اخباری چی میخواد بگه اخباری کدام روایتون میخواد بگه اکتصاب درش وارد شده اون مهن وارد شدن استفاده وارد شده اینها رو کدوم شما بگیریم بگیم اخباری هستیم راهی غیر از اجتهاد اصولی این داره کسایی حتی علیه ابن محضیار اشعری رابع ها مطلق الفایل. آره دیگه اونا چی میخوان بگن چطوری می‌خوان اینا رو کنن؟ آره اجتهاد میخواد، میخواد. الان این روایات مختلف الموضوع رو چطوری می‌خواد جمع کنه؟ بگه ما هم یاد بگیریم. بگه ما هم یاد بگیریم دیگه چطوری می‌خواد رو جمعش کنن؟ در هر کدوم موضوع فرق داره با دیگری. و وقتی موضوع متعدده، حکم متعدد میشه دیگه. نه اختیار دخیل استفاده نوشتیم بکنیم چرا میپرسی حصول الفاعده اختیار هن. من تو ذهنم این مرومده شاید اشتباهی بگم نوشتم اختیار هن. اون اون که بکرم میخوام بخونم اختیار در اشتفاده. مثل عرصه فقط چهارومی اختیار رو ندار رابع ها مطلق الفاعده سوا و نکانت بلک نه نه هم نشی و سبا و نکانت بل اختیارم لا و حاضر موضوع اعمل موضوعات و فی بعض روایات ثم این اسباب الملکیه قاعدهی دارن فقها ها که لا خمس ای لا فی ملک قاعده استیادیه بعد ملکیت انهایی داره اقسامی داره و اسبابی داره تمام اینا اشتهاده در موضوع اخبارینا رو اگه قبول بکنه بنابراین با ما مخالف نیست اگه اینا رو قبول نکنه از چه راهی میخواد اجتهاد کنه از چه راهی میخواد فتوا بده نمیدونم لذا نمیشه به حرفهای امین از سرابادی اعتماد کرد اون اومده همه مبانی اجتهادی و این رو رمیه به غلط و اشتباه کرده به آزم فقهای های امامیه توهین کرده اینا رو چی میخواد جواب بده یعنی بعضی از مواد از این مطالبیشون رو میخونه گریه کنی آقا چرا اینقدر توهین؟ برای چی داری توحین میکنی اقل مثل ملاسدرا ملاسدرا با تمام اختلافی که با صوفیین داره خدا میدونه اگه یه حرفی بهشون زده باشه با اختلافی که با دیگران داره با علمای های خودش که ضد خودشن با تمام احترام رد میشه چرا اینطوری میکنه امین استراباد اسباب ملکیت یا اکتساب یا قبول یا اختیار یا حصول قهریه بینا خیلی مهمه دخیل در مبانی حضرات علامه اینا رو تا یاد نگیرید نمیشه از صفحه 109 یه مطلب خیلی ماهوی و اساسی در علم اصول فقه مطلب به همین شکلی که من مطرح کردم که اوق اوفل نفوس میشه امور انتظایی آیا مرادف امور اعتباریه یا مغایره و بعداً منتقل شدیم به بحث دومی که احکام تکلیفیه یقینا اعتباریه هیچ شکی درش نیست احدی از فقها اصولی این شک ندارن ولی احکام وضعیه اختلف الاعلام فی ماهیتها که آیا انتظایی یا اعتباری یا متعسل متأثر بودنش شازه، بنابراین دایر مدار دو قول انتظایی و اعتباری میشه و سمراتی در فقه برش مترتب میشه یعنی اگر ما احکام وضعی یه رو بدونیم یا اعتباری بدونیم سمره برش مترتب میشه و یکی از سمرات مهمش رو من در این صفحه صدوده و صفحه 111 نوشتم و ماهی از سمرت و المترقبت و ها هاز البحث و تفصیل خیلی مهمه اینا رو با تعمل بخونید حالا اگه وقت بود من خودم میخونم تو کلاس وقت نبود خود بخون ادامه بدید و از بحث یغب نمونید برخم آواز شما لازم به ذهنتی نیست. آقای دکتر، اجازه هست که با این تمپلیت و درونه کار خاصی تو در نشون ندیدید. یعنی با اون با رویداد که رد کردی قلنا <Es> هر <S and peopleinalyk economies>